فصل 8 تمرینات تنفسی و یونیزاسیون منفی هوا بخش اول رساندن اکسیژن به سلسله اعصاب و مغز تنفس یکی از مهمترین اعمال بدن انسان است اگر با نخوردن غذا بتوان باز هم مدتی زندگی کرد با چند دقیقه تنفس نکردن زندگی غیر ممکن خواهد شد این مسئله موضوعی کاملا عادی به نظر میرسد ولی باید توجه داشت که تنفس به ما امکان میدهد تا به زندگی درونی بافت بدن خود دست پیدا کنیم زیرا قسمت مهمی از آن میتواند به صورت ارادی انجام شود انسان از طریق تنفس میتواند بر یک رشته از مبادلات بیولوژیکی تسلط پیدا کرده و روی روند انرژی که تولید شده و در او اثر میگذارد تأثیر داشته باشد اما در رابطه با مغز و سیستم اعصاب به طور کلی، بهتر است متذکر شویم که نورونها و عصبها در برابر کمبود اکسیژن حساستر از سایر سلولها هستند. یک عصب غورباغه که در مایع مناسبی زنده نگه داشته شده، در عرض 3 تا 5 ساعت اگر مایع از اکسیژن خالی شود، تحریک پذیری خود را از دست می دهد. اما آن را در عرض چند دقیقه تحت تأثیر هوا به دست می آورد. ولی اعصاب پستانداران در مقابل کمبود اکسیژن مقاومت بسیار کمتری از خود نشان می‌دهند و تنها چند دقیقه مقاومت می کند. در صورتی که جریان خون که اکسیژن را به مراکز اعصاب می‌برد متوقف شود، اختلالات شدیدی همان گونه که آزمایش استونون نشان می‌دهد به وجود خواهد آمد. با فشار دادن آورت شکمی یک خرگوش، جریان خون نخای وی را قطع می‌کنیم. در این حال یک دوره تحریک حرکتی که با انقبازات تیتانیک برخی از پاهای عقبی همراه است به وجود می آید. این تحریک حرکتی در عرض چند ثانیه پایان یافته و جای خود را به فلج می دهد. در این حالت حساسیت حفظ شده و حیوان از درد فریاد می کشد. در صورتی که اگر به یکی از پاهای عقبی حیوان سوزنی بزنیم فریاد می کشد. زیرا به علت فلت شدن پاهایش قادر به جمع کردن آنها نیست. چند ثانیه بعد یک بحران تحریکی سلولهای قسمت حساس استخانهای پشتی نخا که از طریق درد همراه با تسریع حرکات تنفسی و ناله مشخص می شود تظاهر می کند و سرانجام به کامل ایجاد می شود. اگر در این لحظه مجدداً جریان خون را برقرار سازیم، حالت عادی باز خواهد گشت. نورون‌هایی که بیش از همه در برابر کمخونی مقاومت کرده بودند، یعنی نورون‌های حسی، اولین قسمت‌هایی هستند که کار خود را آغاز می‌کنند، در حالی که نورون‌های حرکتی در آخرین مرحله قرار می‌گیرند. آزمایش‌های دیگری که مثلا روی سگ انجام شده نشان داده است که قطع جریان خون مغزی اگر فقط یک دقیقه و نیم ادامه یابد، مغز قابل تحریک خواهد شد. و اگر این توقف تا دو دقیقه ادامه پیدا کند، حساسیت بازگشته ولی پاسخهای مغزی کند می شود. توقف دو دقیقه و نیمی تا سه دقیقه ای مغز را برای همیشه غیرقابل قابل تحریک می سازد. در انسان، فشار انگشت روی دو سرخ رگ صبات، سریعاً باعث از دست دادن حواس می شود. توقف قلب که در جریان بیماری استوک آدامز ظاهر می شود، به محض آنکه از 30 ثانیه فراتر رود، به دنبال آن سنکوب ایجاد می شود. فشار پایین شریانی، خونریزی شدید یا یک کمخونی جدی، کار مغزی را متوقف می سازد. کند شدن و در نهایت توقف جریان خون در برخی از شریان های مغزی باعث ایجاد ناراحتی‌های های وخیمی در منطقه مورد نظر می گردد. اگر این منطقه گسترش یابد، شخص به حالت اغما فرو خواهد رفت پدیده های مشابهی نیز در هنگامی که مقدار اکسیژن خون کم باشد بروز می کند که از نمونه های آن می توان حالت اغمایی که کوهنوردان در ارتفاعات زیاد به علت کمبود اکسیژن دچار آن می‌شوند نام برد این حالت با درجه کمی ضعیفتر، معمولا در میان معدنچیان که هوای کاملا خالصی در اختیار ندارند اتفاق میافتد. این گونه افراد احساس می‌کنند که در اعماق بسیار زیاد کارایی فکری و حافظهشان به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است از سوی دیگر در درس‌های روانشناسی کاربردی در آموزش هنری ماریون می‌نویسد در فضایی که سرشار از آنیدرید کربن باشد شخص به سادگی قدرت به خاطر آوردن و نیروی ذهنی خود را از دست می دهد. بر رساندن اکسیژن به افرادی که حافظه خود را از دست داده اند، نتایج قابل توجهی را پدید خواهد آورد. بدین ترتیب در بیمارستان وترانس در بوفالوی آمریکا، دکتر الینور ژاکوب 80 فرد سالخورده را از طریق اکسیژن تحت درمان قرار داد. از این تعداد 70 نفر حافظه خود را مجددا باز یافتند. پنج نفر از ده نفر باقی مانده از های قدیمی بودند که منطقه مغزی آنها دچار تخریب بسیار شدیدتری نسبت به دیگران شده بود اما در مورد سایرین تنها پیری عامل به وجود آمدن این حالت بود در آزمایش دیگری پنج بیمار دیگر را زیر چادر اکسیژن خالص و پنج نفر دیگر را زیر چادر هوای معمولی قرار دادند هیچ یک از ایشان نمیدانستند چه نوع هوایی تنفس می کنند. تا از تأثیر تلقینی این حالت جلوگیری شود نتیجه قابل توجه بوده بیمارانی که در چادر اکسیژن قرار داشتند فعالتر شده و حافظهشان به شکل محسوسی بهبود یافت در اینجا متذکر می شوم که طبق نظریه پروفسور دن هام هارمن از مدرسه پزشکی دانشگاه نبراسکا رادیکال‌های آزاد عامل یادزدودگی در رابطه با پیری بر اثر عملی که آنها در طول زندگی خود روی سلول‌های عروق خونی مغز انجام می‌دهند می‌باشد او می‌نویسد آنها در تشکیل یک پروتئین فیبری که یکی از عوامل تشکیل‌دهنده بافت مغزی تخریب شده است شرکت می‌کنند برای اندازهگیری مبادلات تنفسی بافت مغزی در شرایط عادی از یک سو اکسیژن را در سرخرگ رگ صبات یعنی خونی که به مغز می رود، و از سوی دیگر در خون سیاهرگ رگ گلویی که این قسمت را تغذیه می کند اندازه می گیرند. قبل از آن مقدار خونی را که در شریانهای صبات و سیاه رگ های گلویی وجود دارد اندازه گیری کرده و در این حالت می توان حجم اکسیژنی را که مغز در یک دقیقه مصرف کرده محاسب نمود. به عنوان مثال، در سگ و خرگوش، مقدار مصرف اکسیژن که از این طریق اندازه گیری شده برای هر صد گرم ماده مغزی در حال بیداری 10 متر مکعب می باشد. تحت تأثیر بیهوشی بر اثر کلوروفورم این مقدار به یک متر مکعب کاهش می یابد. در عوض تحت تاثیر یک تحریک که مثلا توسط آتروپین به وجود آمده باشد این مقدار تا 15 سانتیمتر متر مکعب افزایش خواهد یافت برای اینکه بزرگی این ارقام را دریابید مقادیر اکسیژنی را که در آزمایش‌های روی حیوانات برای بافت‌های دیگر مشخص شده برایتان توضیح می‌دهیم 100 گرم عضله در زمان استراحت خود 30 سانتیمتر متر مکعب اکسیژن و در هنگام یک چکه الکتریکی سی سانتی متر مکعب آن را مصرف می کند. گرم بافت کلیه معمولاً سه تا شش سانتی متر مکعب اکسیژن به مصرف می رساند و در هنگام تزریق اوره و افسایش ادرار این مقدار به 15 پانزده سانتیمتر مکعب می رسد. صد گرم میوکارد در هنگام کار معمولی خود سانتی سانتیمتر مکعب و تحت فشار بالا بیست متر مکعب اکسیژن مصرف می کند. از این ارقام در میابیم، البته در انسان نیز افزایش آنها به همین ترتیب است که تنفس بافت عصبی تقریبا به اندازه بافت عزولانی و یا غده است که فعالترین بافتهای بدن ما هستند و به همین دلیل بزرگترین مصرف کنندگان اکسیژن محسوب می شوند. پس نتیجه میگیریم گیریم که برای تضمین کارایی خوب مغز، و خصوصا برای تسهیل به خاطر سپردن باید حد اکثر مقدار اکسیژن را به مغز خود برسانیم. تمرینات تنفسی حد مناسبی از اکسیژن را به بدن ما میرساند. در بخش تمرینات تنفسی امیق، در کتاب بیودینامیک مغز این نکته را کاملا توضیح داده ام و در اینجا خلاصه ای از موضوع را مجددا تکرار میکنم. بخش دوم تمرینات تنفسی این اعمال از ساده ترین تمرینات بوده و برای همگان مناسب است و تنها در موارد سل ریوی و سر بایستی از انجام آنها خودداری کرد. زیرا از سوی احتمال دارد این تمرینات در مورد سل ریوی خروج خلط خونی را تشدید کرده و درمان را به خطر بیاندازد و در مبتلایان به سر باعث ایجاد بحران شود. اگر بخواهید این تمرینات را در یک سالن یا اتاق انجام دهید، بایستی قبل از آن یک جلسه کوتاه نرمش را انجام دهید. در غیر این صورت، مقدار اضافه اکسیژنی که بر اثر حرکات شدید قفسه سینه به داخل فرو برده می شود، در هوای بازدم به بیرون بازگردانده خواهد شد. تمرین بدنی اکسیداسیون ها را افزایش داده و باعث ایجاد تقاضای بیشتری برای اکسیژن خواهد شد. بنابراین تمرینات تنفسی خصوصاً به دنبال یک جلسه روزانه یا دو بار در روز ورزش در یک اتاق مفید واقع خواهد شد. وضعیت شروع: خبردار ایستادن یعنی دستها در طول بدن فرو افتاده، پاها به هم چسبیده، سر به صورت استوار و مستقیم و شانه ها به سمت عقب پنجره ها را به صورت کامل باز کنید. انجام عمل دم با پر کردن قسمت پایین ریه ها آغاز می شود. برای رسیدن به این هدف باید اینطور تصور کنید که هوا در داخل شکم فرو رفته و آن را به جلو می فرستد. سپس بدون آنکه توقف کنید قسمت بالایی ریه ها را با هوا پر کنید به صورتی که قسمت بالایی سینه جلو بیاید. به محض آنکه ریه‌ها از هوا پر شدند، به آرامی اجازه دهید تا دنده‌ها پایین بیایند و شکم نیز به داخل باز گردد. هنگامی که بازدم عادی به پایان رسید، به منقب ساختن ارادی عضلات شکمی و فرو بردن دنده‌های پایین و به داخل بردن شکم ادامه دهید. پس از این بازدم تحت فشار، شروع به فرو بردن هوا کرده و مجدداً این مراحل را تکرار کنید. فرو بردن هوا باید منحصرا از طریق بینی باشد اما بیرون فرستادن آن می تواند از طریق بینی یا دهان انجام گیرد کل مدت این تمرینات باید بین سه تا 8 دقیقه باشد در هیچ شرایطی نباید احساس سرگیجه یا تپش غیر عادی قلب به شما دست بدهد اگر چنین حالتی پیش آمد نشان دهنده این است که تمرینات بیش از اندازه طول کشیده تمرین برای این کار کافی نبوده یا آهنگ تنفسی انجام شده برای شما مناسب نیست. در این رابطه شما را از برخی تمرینات تنفسی که تعدادی از معلفان پیشنهاد کرده اند و اساسا شامل فرو بردن تنفس به صورت شدید و طولانی و سپس حبس نفس در ریه های پر از هوا به مدتی که از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر است شدیداً من می کنم. این روش بسیار خطرناک است. زیرا اتاقک های هوای ریه را بیش از حد منبسط کرده و باعث ایجاد نراحتی های گردش خون که آنها نیز به نوبه خود می توانند باعث سرگیجه و یا حتی سنگ شوند می گرده. این کار همچنین می تواند باعث بروز سل پنهانی یا خفته نیز بشود. تمرینات تنفسی خصوصا در صورتی که در طول روز و در کنار درختان و فضای سبز انجام گیرد مؤثر واقع خواهد شد. گیاهان از طریق مکانیسم کلوروفیلی خود باعث می شوند که فضا پاکیزه و از نظر اکسیژن غنی شود. در عوض باید شبها از محل آنها دوری کرد. زیرا در این هنگام آنها از طریق تنفس هوا را از گاز کربونیک اشبا می سازند. برخی از گلها به خاطر عطر شدید و بوی مسمومی که از خود متساعد می سازند خطرناک هستند. در این رابطه می توان از زنبغ و درخت غار قرمز نام برد. بخش سوم تأثیرات مزر دخانیات در رابطه با بهداشت تنفسی بهتر است از دخانیات پرهیز کرده و در صورت امکان همانگونه که در قسمتهای بعد خواهیم دید از هوای آلوده شهرهای بزرگ نیز دوری نمایید. مدت هاست که استفاده از دخانیات باعث از دست دادن حافظه به مقدار قابل توجهی، خصوصا در مورد کلمات شده و ناراحتی‌های دیگری را نیز به وجود می‌آورد. بی شک توضیح آنها در خارج از چهارچوب بحث ما قرار دارد ولی ما آنها را بر حسب درجه اهمیتشان فهرستوار نام می بریم. آسیب در بینایی چشم، حواس چشایی و شنوایی، ایجاد احتقان مغزی سبک همراه با سرگیجه، لرزش، دردهای عصبی در بازوها و شانه ها ورم معده و ورم حنجره مزمن، حالت تهوع، درد شکم، یبوست شدید یا برعکس اسهال همراه با تعرق سرد، تپش قلب و کاهش اسید آسکوربیک خون. سوای این مسائل، توتون و موادی که از سوختن آن به وجود می‌آیند، عناصر شیمیایی در خود دارند که نقش مهمی در بیماری سرطان ریه بر عهده دارند. و این مسئله در آزمایشگاه توسط گزارش های پزشکی نشان داده شده است. آماری که از دویست هزار نفر آمریکایی گرفته شده نشان داده است سرطان ریه تا چه حد در افراد سیگاری نسبت به اشخاص غیر سیگاری افزایش دارد. این افزایش در واقع از نسبت ده به یک برخوردار است. توتون همچنین مطمئنا در سرطان‌های دهان، هنجره، مری، معده و مسانه دخالت دارد. از میان عناصر سرطانزای توتون میتوان از دیبنزو 3-4-19، هشت اکسیکینولئین دی یک سه بوتیلنگولیکول و رنگهای آنیلین نام برد. علاوه بر تحریک و آسیبهای مزمن نایجه ها و نایجک ها که در میان تمام سیگاری ها مشترک است استعمال دخانیات، مخاط ریه ها را نسبت به تأثیر سرطانزای هوای آلوده شهرهای بزرگ حساس می سازد. و سرانجام، توتون یکی از مهمترین عوامل آغاز بیماری های است در این رابطه، پروفسور جان لونگیر تخمین می زند که در فرانسه، تعداد مرگومیر بر اثر بیماری های غلبی عروقی ناشی از مصرف توتون بیست هزار نفر در سال است. بنابراین به نظر می رسد که توتون از یک سو با تحریک افزایش لیپیت خون و از سوی دیگر با تولید مقدار زیاد آدرنالین که باعث ایجاد لخته می شود بر جریان خون تأثیر می گذارد. لونگر خاطرنشان نشان می که این دو مسئله دو انصار تعین کننده در سکته قلبی هستند. علائم مسمومیت ایجاد شده توسط توتون و خصوصا کاهش حافظه در افرادی که در فضای بسته و خصوصا به صورت ناشتا سیگار میکشند، سریتر آشکار میشود. سیگار کشیدن در هنگام مطالعه یا کار کردن نیز مضر است. زیرا چون شخص نمیتواند در یک زمان به دو مسئله توجه کند، مقدار زیادی از دود را میبلعد. برای از بین بردن ناراحتی روانی و فیزیولوژیکی ناشی از مصرف توتون و جهت جلوگیری از خطرات سرطان ریه یا سایر انواع سرطان که بیشک دخانیات در آنها دخالت دارد، مسلما کافی است استعمال سیگار را متوقف سازید. رفع مسمومیت به صورت آرام شامل کاهش دادن مقدار توتون است که در هر هفته مصرف می شود. به نظر میرسد که این کار برای آنهایی که به مصرف سیگار مجددن باز میگردند بهتر از قطع ناگهانی مصرف آن باشد. در عوض رهایی از این سم وسیله عالی برای اعمال اراده و قدرت تسلط بر خود میباشد. در صورت نیاز میتوان در این روش درمانی از مواد تجارتی که شامل مخلوطی از اسانس‌های معطر همراه با هیدراتهای کربون است استفاده کرد. که در تماس با پیردین موجود در دود توتون طعم ناخوشایند و بدی به خود می گیرد. اگر شخص قادر به حضب کامل سیگار نیست، این مسمومیت را میتوان با کم کشیدن، دو تا سه سی سیگار در روز و ترجیح پس از صرف غذا و با استفاده از سیگارهای فیلتردار و یا چوب سیگارهایی که تا حد امکان بلند و دارای فیلتر که باعث گرفته شدن نیکوتین و مواد قطرانی آن می شود باشد، کاهش داد. پیپ‌هایی که دارای محفظه جداگانه‌ای هستند نیز همین حالت را دارند. این را نیز بگویم که پیپ و سیگار سموم کمتری نسبت به سیگارت دارند. همچنین می‌توان همانطور که دوستمان دکتر آندره کوئنو فرزند بیولوژیست معروف لوسیان کوئنو پیشنهاد می‌کند، جانشین‌های بی‌ضری نظیر خرد شده برک های ذرت یا موز را جایگزین توتون کرد. بخش 4 هوای مسموم شهرهای بزرگ هوای مسموم شهرهای بزرگ نیز مانند توتون و با همان علل مشابه مانع بسیار بزرگی برای عملکرد خوب مغز و خصوصاً حافظه است سه عامل اساسی در آلودگی شهرهای بزرگ وجود دارد که عبارتند از میکروبها، گرد و غبار و عناصر شیمیایی نمونه برداری از هوایی که در خیابان‌های پاریس وجود دارد، نشان دهنده کسرت باکتری‌هایی است که تعداد آنها بر حسب ساعت روز متغیر است. مثلا این تعداد در ساعت 7 صبح 640 واحد در سانتیمتر متر مکعب، در ظهر هزار و در ساعت 7 بعد از ظهر به هزار واحد در سانتیمتر متر مکعب میرسد در صورت وزش باد شدید مقدار باکتری ها از این هم فراتر رفته و تا 180 هزار واحد در سانتیمتر مکعب نیز افزایش میابد. در حالی که یک باران شدید آن را به 13 هزار واحد میرساند. مقایسه این هوا با هوای خالص کوهستان یا دریا باور است، زیرا شمارش باکتری ها در آنجا به صفر و یا تقریباً صفر میرسد. دو سوم گرد و خاک هوا غیر عالی و یک سوم آن عالی می باشد. مواد غیر عالی آن از ذرات زغال، سیلیس، آهن، انواع فلزات، عناصر خاکی که بر اثر کشیده شدن کفش ها روی زمین با هوا آمیخته می شوند، ذرات رادیواکتیو تولید شده توسط کارخانه هایی که از شکستن اتم یا انفجارات اتمی استفاده می کنند، تشکیل اند. و مواد عالی، از ذرات و خورده های حیوانی، بافت ها و خورده های گیاهی هستند. برخی از این قبارها خنسا بوده ولی برخی دیگر سمی و آسیب رساننده مانند سرب، مس، آرسنیک یا سرطان‌زا مانند گرد و غباری که از صنعت قطران، بنزن، روغنهای معدنی و غیره ایجاد می‌شود، می‌باشند. و سرانجام بسیاری از آنها بیماریزا هستند به صورتی که یک گرم گرد و غبار می محتوی یک تا دو میلیون باکتری باشد. ذرات زغالی که شامل دودها هستند از دانه های نکتیز شیش مانندی تشکیل شده اند. آنها مانند پودر سنباده عمل کرده و بافتهای حساس ریه را خورده و در آن فرو روند و باقی می مانند. بدین ترتیب رساندن اکسیژن به مغز تدریجا کاهش یابد. دکتر بردا می نویسد هنگامی که من جسدی را تشریح می کنم، خیلی زود یک پاریسی واقعی را از ریه سیاه، سوراخ و پر از کربون او می شناسم. تا پانزده سال اقامت در پایتخت، مجاری تنفسی هنوز از خود دفاع می کنند، ولی از این مدت که بگذرد ریه ها حتما سیاه خواهد شد. در واقع در شرایط عادی فقط مقدار کمی از ذرات کربن را روی خاک میتوان یافت زیرا جریان‌های بالا رونده هوا آنها را به سمت لایه‌های بالایی جو می‌برد که در آنجا صفحه ای را تشکیل می‌دهد این صفه در منطقه پاریس دایره‌ای را با شعاع 18 کیلومتر اشغال کرده است متاسفانه این صفه از اشعه ماورای بنفش که میکروب‌ها را از بین برده و مفید می‌باشد جلوگیری کرده و نسبت اوزون را که گازی زد افونی کننده است کاهش میدهد. اثر این ذرات بر حسب فصل تغییر می کند. به عنوان مثال در ماه ژانویه برابر با دیماه باعث کاهش نور آفتاب به مقدار 33 درصد نسبت به مناطق روستایی می شود. اما در تابستان این تفاوت ضعیف تر است. ولی مهمترین نوع آلودگی هوای شهرهای بزرگ آلودگی شیمیایی است. این حالت بر اثر وجود گازهایی هایی که برخی سمی و برخی دیگر سرطانزا هستند ایجاد می شود. از میان دسته اول می توان اکسید کربون، آنیدرید سلفرو، بخارهای سرپ سربتترائتیل و از دسته دوم هیدروکربورها، تولیدات آرسنیکی و قطرانی را که در حالت معلق باقی می مانند نام برد. در این نوع آلودگی، سهم مهمی بر عهده گازهایی است که از اگزوز ها خارج میشود. در شهر بزرگی که روزانه دویست هزار اتومبیل و سایر وسایل نقلیه موتوری در ساعت شلوغ در آن حرکت می کنند و این رقم در ساعتی که ترافیک کمتر است به حدود 20 هزار اتومبیل میرسد، مقدار گاز سمی که در طول 24 ساعت در فضا پخش میشود، رقم وحشتناک 36 تا 37 میلیون متر مکعب اکسید کربن و 525 الى 526 میلیون متر مکعب گازهای مختلف دیگر است. در شهر پاریس حجم اکسید کربنی که در طول 24 ساعت از طریق وسایل نقلیه عمومی تولید می شود به 50 میلیون متر مکعب می رسد که در برخی خیابانها از حد سمی سم کاملا فراتر می رود. از سوی دیگر تجزیه خون نشان داده است که از هر دو پاریسی یک نفر شدیدن از اکسید کربن مسموم است جذب این بخارها و گازها بسیار خطرناک است این مسئله باعث درجههایی از کم خونی و همچنین ناراحتی های مغزی مثل سردرد گرایش به خواب آلودگی ضعف حافظه و اراده شده و شخص را آماده ابتلا به سرطان ریه میسازد بنابراین بهتر است تا حد امکان از هوای مسموم شهرهای بزرگ دوری کنید که در واقع گاهی اوقات این پیشنهاد چندان عملی نیست. به هر حال اگر مجبورید در شهر زندگی کنید بهتر است در آپارتمان یا خانه‌ای که در مناطق حاشیه‌ای شهر واقع شده و در طبقه بالا سکونت کنید جایی که هوا آلودگی نسبتاً کمتری در خود دارد. همچنین بایستی تا حد امکان از برخی کارخانه‌هایی که عناصری سمی نظیر کلور یا مشتقات آن همچون کارخانه سفیدسازی سفید سازی کاغذ یا سلولوز هیدروژن سولفوره، همچون کارخانه های تولید سلولوز تصفیه گاز لاک کارخانه های تصفیه نفت و غیره آنیدریت سولفورو و آنیدریت سولفوریک، همچون کارخانه های گرم کردن پیریت تولیدات آرسنیک، اکسید کربون، بنزوپیرنها، پروکسید ازوت آمونیاک، بریلیوم، جیوه، سرب و نمک های آن، سیلیس، مشتقات فسفور، مواد پایعی قلیایی و قلیایی خاکی، فلورور و فلوسیلیکات ها، همچون کارخانه های مختلفی از قبیل کود شیمیایی، بریلیوم، سیمان، میناسازی، فولادسازی، کوره های حرارتی و غیره، و برخی عناصر مضر دیگر را در هوا پخش می‌کنند تا حد امکان دورتر ساکن شوید